اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام بخشنده بخشایشگر الف لام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 و به رستاخیز یقین دارند و هم المفلحون آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند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 آگاه باشید اینها همان مفسدانند، اند بلی و وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا, قالوا أنؤمن آمَنَ السفهاء. أَلَا إن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 مثلهم که الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حولهو ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون آنان منافقان همانند کسی هستند که آتشی افروخته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 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَّا نَزَّلَّا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا فأتو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادَعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ, إن كنتم صَادِقِينَ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 إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فَمَا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 فقال انبیونی بی اسمائی ها اولائی صادقین سپس علم اسما علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم آموخت بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید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 قل له بطوم منها جميعا فان ما مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون همگی از آن فرودایید هرگاه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 فبدلالذین ظلمون قولا غیرالذی قیل لهم فانزلا على علالذین ظلمون رجزا من السماء بما کانو یفسقون اما افراد ستمگر این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند لذا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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 و نسلهای بعد از آنان و پند و برای پرهیزگاران قرار دادیم و قال موسی لقومه این الله یأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن اکون من الجاهلین و بیاد آورید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 نه از خوف خدا می و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانیست و خداوند از اعمال شما غافل نیست افت طمعون این یؤمنو لکم و قد فریق منهم یسمعون كلام الله ثم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 اهل آتشند و جابدان در آن خواهند. والذین و وعملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنه هم فیها خالدون و آنها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند آنان اهل بهشتند و همیشه در آن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 و ذی القربا والیتاما والمساکین و قولو لنناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم توليتم الا قليلا منكم و معرضون و بیاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم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 و کسی آنها را یاری نخواهند جد و لقد آتينا موسى الكتاب و من بعده برسل و آتينا عیس بن مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بروح الْقُدُسْ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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملَكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشتراهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ و یهود از آن که سُلَيْمَانَ در عصر سلیمان بر مردم میخاندند پیرهی کردند سلیمان هر گز کافر نشد ولی شیاطین کفر ورزیدند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 وقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانیهم قل هتو برهانكم إن كنتم صادقین آنها گفتند هیچکس جز یهود یا نصارا هرگز داخل بهشت نخواهد شد این آرزوی آنهاست بگو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 هستی بخش آسمان‌ها و زمین است و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها می‌گویند موجود باش و آن فوری موجود می‌شود. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتینا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم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 ربنا تقبل منا ایندک انت سمیع العليم و نیز به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماییل پایه های خانه را بالا می و می‌گفتند، پروردگارا، از ما بپذیر که تو شنوا و داناد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 از ای که بر آن بودن بازگردانید. بگو، مشرق و مقرب ازان خداست. خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت میکند. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس و يكون.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 آگاهان چتمان می کنن. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین این فرمان تغییر قبله حکم حقی از طرف پروردگار توست بنابراین هرگز از تردید کنندگان در آن مباش و وجهة هو موليها فاستبق الخيرات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 الذین اذا أصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله و ان راجعون آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان میرسد میگویند ما ازان خدا ایم و به سوی او باز می‌گردیم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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس من بعد ما في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم روشن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 بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند گناه آن تنها بر است که آن وصیت را تغییر می خداوند شنوا داناست. فمن خاف من موسی جنفا او اثما فأصلح بینهم فلا اثم علیه این الله غفور رحیم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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ولعلكم تشكرون روز در چند روز معدود ماه رمضان است ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانهای هدایت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 و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به حلاکت نیف کنید. و نیکی کنید که خداوند نیکوکارن را دوست می دارد و الحج والعمره لله فإن این احصرتم فمستیسر من الهدی و لا رؤوسكم حتی يبلغ الهدی محله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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِلِ الْحَرَامِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 و از من بپرهیزید ای خیرات مندان لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام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 و از خداوند آمرزش به که خدا آمرزنده مهربان است. فَإِذَا فا قَطَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ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 فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن, ومن تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا واتقوا الله وعلموا انکم الیه تحشرون و خدا را در روزهای مؤینی یاد کنید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 شما به سوی او مشهور خواهید شد. و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي ويشهد الله على ما في قلبي وهو الادلخصام. vaz مردم کسانی هستند که گفتار آنان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 حالان که شر شما دران است و خدا میداند و شما نمیدانید يسالونك <تصفح> <تصفح> عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبیل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر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 و در حال کفر بمیرد تمام اعمال نیک گذشته او در دنیا و آخرت بر میرود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود این الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولائک اولائک یرجون رحمت الله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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَّ فِي أَنفُسِهِنَّ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 خداوند آیات خود را برای شما شرخ میدهد شاید اندیشه کنید الم تر ایلالذین خرجو من دیارهم و هم علوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتو ثم احياهم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 فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير <سطه> يا همانند کسی که از کنار یک آبادی ویران شده عبور کرد در حالی که دیوارهای آن به روی سقفها ها فرو ریخته بود و اجساد و اسلخانهای اهل آن در هر سو پراکنده بود او با خود گفت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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم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 در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیمتر و برای جلوگیری از تردید و شک و نزا و گفتگو بهتر می باشد مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید. در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید ولی هنگامی که خرید و فروش نقدی می کنید